بسم الله الرحمن الرحيم و الله. الحمد لله الصلاف على رسول الله و عالیه و آل سیم و رکیت الله و نعنو على اعدائهم خلاه همه کمال نکتاها الیش و انر ابصار قلوبنا بیوار ندرها الیش حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور تتصل الى معد من عدمه تتصیر ارباقنا معلقتا عزق السکش في محمد بيته عليه تاکمه وظیفه تکلیف عدم وزادی اولا ارز تشنکل دارم به محظر اسراتید محترم هزارات آیات و مجاج موزنا تلاب ارزمند خواست الله تلاه بازندرانی و جمع و همراه ایشون که از قوم مقدس قوم جهاد و اجتهاد به ام و به آسمه ام جهان اسلام و جبه مقاومت تشریف فرما شدند و انشاءالله حسب در محظر قبله تهران هم مشرف خواهند بود زیارت هسته عبدالعظیم حسنی علیه السلام خدا را شکریم که توفیق داد و فرسی در مستوای علمی و در خور و قراخور تشکیل بشود استایت الله سفیه آزندرانی از اساتید برجسته حوزه کنونی هم هستند شخصیت امتازی که علاقه بر تسلط و تحفظ بر اساس حق، اونچه که از صلاف صالح ناصح به ما دسیده میراس معرومتی و محتممی که خاص شیعه است فرمودن اصول ما اصول اعلی است ولی به نظر من به طلبه به بر این فرمایش که اصولا علم اصول ما معنا امر ابداعی نیست ولی حقیقت این است که این دانش مثل حکمت که اونجا گفته می شود ما از یونان احیانا از اسکندرانیه، از هند از ایران قدیم در حکمت احس کردیم به چیز دیگری بدل شده مثل ارلامی تبا شون میفرمایند که دویست و قاعده یا مسئله یا اصل بوده حکمت آنگاه که وارد جهان اسلام خاص جهان تشیع شده ایشون اون زمان سی سال پیش بودن که به هفصد قاعده یا اصل یا مسئله بدل شده بنده طلبه که طلبه فلسفه هم هستم، از میکنم امروز مصول و قواهد یا مسائل و مباحثی که در حکمت ما مطرح است، از هزار فراتر رفته. یعنی درست است که ریشهش رو پیشینه و دیرینه حکمت اسلامی در فرهنگ ها و بین ملل ما سراغ داریم اما اونچه که امروزه در کفه ماست باید اونها بیان بیام بحثی رو زمانی خیلی سال پیش شاید 20-25 سال پیش دانشکایی فلسفه دانشگاه آتن سخنرانی داشتن به مناسبتی که سال قبلش مرحومه حالا این خاطر است به یاد اومده از کنم مرحوم علامه جعفری تشبده بودم اونجا آمدن فرمودن فلانی من رفتم دانشکده فلسفه دانشگاه آتن سخنرانی کردم و بهشون اعتراض کردم ما فلسفه را از شما گرفتیم بیایید ببینید مثلا تو ایران افلاطون و ارسطو چه جایگاهی دارند من کل این شهر آتن رو گشتم یه جا ندیدم اسم خیابونی میدانی به نام عرست و افلاطون باشه یا مجسمی عرست و افلاطون رو ندیدم و رونا اعتراض کردم سال بعد ما رفتیم همون دانشگاه و همون دانشکده عکس فرمایشون بزرگوار رو عز کردیم احس کردیم اون چه یک مقدار اشاره به ادوار در اوقات تاریخ فلسفه و اقنانیات اسلامی داشتیم نعرض کردیم اون چه به عنوان فلسفه در جهان اسلام خصوصا ایران وجود داره اگر افلاتون و عرستو سر از خاک بردارن باید بیان زانو بزن اینقدر تغییر کرده همینطور است یعنی فرمایش رستاد لایسیفی دقیقی است درست است ولی سهم بزرگان ما و علمای ما و های دوره متفلسفه ی ما خصوصا این دوره حدود 150 اخیر از زمان مرحوم محقق خراسانی و میرزا نائینی و محقق اصفهانی و آسیاب و تا مؤخرین از و ممهای خویی و شیصد و بزرگوار دیگر کلام نمی بریم به هر حال رنگ فلسفه گرفته و هیچ ایرادی هم نداره اییس عقل از حیثیت پیشی گرفته استحکام پیدا کرده استوار در هر حال سایت الله ضمن تسلط و تحفظ بر این سرمایه عظیم و اون محرف، میراث میراثه معرفتی غنیمت تلاش میکنن مباحث اثری رو پی بگیرن مسائل جدید رو وارد بشن یکی از آثاری که از ایشونی برسرونمای خواهد شد ناظره به همین دقدقه و همین علاقه است که ایشون دارن و انایت خاصی که از تا ایشون دارن پر جوی خاصی که من مطمئن هستم و طلاع دارم خودشون رو مستحظرم برال وجودشون مختلف است، من همطوری که از تای نوری هم در پیامشون به نام از ایشون ذکر کردن و تجلیل کردن به حق و به جا هم این تج پذیرفت و به هم سرمایه های حوزه ما و امیدهای های آینده حوزه قلمداد می شوند حضورشون در این مجمع علمی و این مرکز حوزه منصوب نامبارک است قضا سلام برای ما مختلف هست و تفقد کردن از طلبه ها تشکر میکنم از حضورشون از هستایت الله نوری همدانی مرجع مجاهد شجاع و انقلابی هم سپاسگزارم که به هر حال پیامی رو برای این هم اندیشی مرقوم فرمودند و مستفیض شدیم و یه نکته نو در فرم پیام بود که کمتر مورد توجه فقهای ما بوده است من چون این دردغه رو داشتم و بحثایی در این زمینه داشتم خیلی از این نکته که شون در پیامشون اشاره کردن خیلی خور شدن به اون که خداوند فقه ما هم تکالیف رو شامل تکالیف و حقوق است غالبا تصور میشه فقه عهدهدار تعیین تکالیف است و از این جهت فقه متهم است که کاری به حقوق مردم ندارد گاه گفته میشود در دوره مدرنیته حقوق اصل است در سنت تکالیف در دین تکلیف در مثلا دوره جدید مدل مدر حقوق اصل است ولی چنین نیست فقه مشتمل بر حکمیست و از جمله شامل هم تکالیف است هم حقوق است هم بستیات. دست کم از یه جهتی مجموعه احکام فقه ما به این سر کلان تقسیم می شود. آیا که از هم مؤسسه محترم الاجتهاد الفعال فعال، نه فعال، و هم از مسئول شهادی حوزه امام بزرگ، هم از دوستان حوزه امام بزرگ متصلی امام شهادی سلام، از یکان یکان هم رو در این موسسه، تشکر می‌کنم و زحمت کشیدن، تلاش کردن در این میان. شاید، خلابا پرسند، ما چونستت هم سلامت بفرمیم و بلدی بفرسند از همون گزاره های که ها در بیدار سازی انقلابی و سافتار فرهنگی کفتن بعضی گزاره‌های های غلط فرهنگی رایج یکی از اون گزارهای غلط متأخر و جدید، مستحدث و مستجده رایج شده میگن آقا اینجوری جمهوری اسلامی دیگه یکی از پیش‌فرضای این کم‌چو ولنگو خراب ولی متاسفانه گاهی درست از در میاد میگن آقا تو به ما هر چی به سرعت میره میگن فلانی دوزیت اتفاقا میره جو ما در میاد اول بس ما من گفتن ولی درست ایستامو با متقاضی ترست از ابتدای یه ایت جلسه بولنگو خراب. از حضور تلاش و حضور مدیران معاونان در سینتولا در این سوم اسسه یارجمن و سایر امدادرس که در این جلسه آماده شده بودند، ازشان دیت تشکر میکنم. از مدیر پرتلاش با اخلاص با صفا متقاضی و جدی مجموعی حوزه تهران هم جناب استاد و جدرسامر موسیم و رحمی صادق هم تشکر کنم برغم تراکوم بررامه ها و کارهاشون در این جلسه حضوری یافتن پشتیبانی میکنن از این نوع نشست ها و هم اندیشه ها و همه ایش ها سفاظ خوزاری. ایام و ایاد رو هم تبیی کرد بکنم دیگی صحبتمه شد خطبه نمازجومه دیمون و سبتار هم رو داری و که خسته نشیدیم داری من توأم میکنم با این مزاحات که خیلی خسته نشیده از عرایز ناقص نارس من حال ایام است ماه رجب رو داریم ترک میکنیم وارد ماه شعبان میشویم انشالله داریم ایام خدا امتال انایت کنه از نفهات و فیوزات این آنات و لحظات این ایام و ریالی فرخوردار باشین و خوش آبا حال شما که انشاءالله جزئه رجویون خواهید بود و انشاءالله دنبالتون در قیامت بگردن و یا خطاب کنن به عنوان اگی ها صداتون کنن انشاءالله که موفقید ما که متاسفانه اینو تعارف نمی کنم. از اون قصد تعارفهایی که ما طلبا معمولا در مسائل می کنیم. نیست به شدت احساس حسان می که از این ایام لیالی بیوهرین متاسفانه خیلی تو که باید برخوردار نیستیم خوش آبا حالا شما شما در شعبان آمادشیم برای رمزان یا به تعبیری که فقیح حکما یا حکیم الفقه های طلاع جوادی فرمودن ماه شعبان ماه پایانی سال عبادی است ماه تصویح حسابه که بتونیم آمادشیم با حساب پاک وارد زیافت الهی در رمضان بشیم این چوانا این ایام مبارک است میلاد مبارک هست، سید شهده میلاد مرک است بزل هست، تجاد و در ادامه سایر مناسبت هایی که در این ماه و مهمتر از همه میلاد نورانی و مبارک است و جت، عربانو و عرباقون آنمین، ره تراب مقدمه الپدا و عجل مانطالو پرجوشم این ایام هم مبارک هست و ملتمس دعا هستیم از خوابت که عنوانی که این نشست داره صحای صحیفی خوب معنی کردن من یه مداری از اونچه که معمولاً از اوارفت برداشت میشه نگران بودم معمولا ما میگیم آقا مسائل مستحدثه و حالباً میگیم سراغ بعضی مفردات بعضی فرو خاص آمون مسئله فرز رمز ارزها چه مدرم. پول اعتباری چه می شود مثلا فرض کنید که احکام بانک چه می شود فلان مسئله محلوط مهندسی ژنتیک چطور می شود مثلا فرض کنید مسئله استنصاب حکمش چیست امسال اینجور بحث ها و فروعاته و این نگاه یه نگاه حد است به فقه معاصر یا مسائل مستحدثه انتظار میره که از این مرحله و از این حد فراتر بریم چون این همون چیزیز که همیشه هست اطباع جدیدی نمی امیده های مکارشون همینه یعنی همیشه باید استفداع بشود و فروع خاصی رو سوال کنن اونو مرسه مبانی پاسخ بدن افتاع کنن این شده متعارفیست مستجده و مستحدثه هم نسبیست دیگه هر اصلی مستجدات و مستحدثات خودشو داره چیزهای الان جزء فقه سنتی و اصطلاح ماست که یه زمانی اونا مستجده و مستهدس بودند مطالب امروز مستهدس مستهدس مستهده انگاشته میشه و 500 اصد دیگه اینو کوهنه میشه اینا جوز فقه سنتی میشه اونی که ما بهش احتیاج داریم یک نگاه چلانه نگاه و تغییر رو کرده نگاه در به لحاظ روکردی و ملحظ و منظر باید تغییر کنه با یه نگاه کلی و کلان داشته باشیم یک نگاه و با یک روکرده نو رو کرده شامل که معتوفه به همه امور و شعون باشه سمامون بیانی که در تعریف جدید از اجتهاد فرمودن شاید منظورشون همین بود با مطرح کردن نقش زمان و مکان در استنباط در فقه باز منظورشون همین بود که ما مسائل رو تر از این ببینیم با یه سلسله اصول و قواعد اساسی‌تر و کلان‌تر و جامع‌تر و شامل‌تر و روزآمدتر و کارآمدتری رو باید به اصولمون اضافه کنیم و در همین سنخ البته مباحثی که در اصول موجود هست و با تحفظ بر اون چه که به مسابه سرمایه در اختیار داریم به جای نگاه فردی نگاه اجتماعی داشته باشیم. به جای نگاه فارغ از حیث سیاسی شغون ما به نحو سیاسی و مسائل نگاه کنیم مردان بزرگی فقیهان عظیمی و نابغهی چون مرموی طلا برچه دی بفرمایم ما مسئله نداریم که در فقه ما و در اسلام اجتماعی و سیاسی نباشه در این کتاب سلات مسافرشون بسته به حسب مناسبت این مطلب رو فرمودن کشان کس تصور مکنید تو سلات مسافر چرا اونجا به فرمون که اصلا ما مسئله فیل سیاسی و فیل اجتماعی نداریم در فقه اسلام هرچه داریم اجتماعی سیاسی است و بزرگی مثل ساعت جواهر بگه اگر کسی قائل به بلایت فقیه نباشه در واقع به حکومتی بودن فقه حکومتی بودن شریعت حکومتی بودن دین در حقیقتشون ولیت فقیه که واسه یک شخص نیست واسه فرد نیست ولی فقیه عمود فستات نظام است و در واقع قطب رحای حیات مؤمنین و متدینین و بلکه امت بلکه مطلق جامعه انسانی است. یعنی حکومت یعنی ولایت یعنی حکومت در واقع. وقتی مس صاد جوائید میگه کسی اگر اینو نفهمیده باشه هم بوی فقه استش ممنوع کرده. اصلا نمیدونه چی است. خب اگر این است پس باید به کل فقه با همین رو کرد نگاه کنید. در نتیجه ما در حقیقت نیازمند به یک نگاه تازهی هستیم نسبت به هم وظائف فقها هم وظائف فقه و قهران هم به وظائف و کار کردی که اصول داره. آیا فقیه باید یه مش فروعات رو اونم به صورت متفرد و جدا جدا از هم بپردازه و رعیش راجب او ارائه کنه این کار رو باید بکنه یا باید یه نگاه جامعه داشته باشه و کلان نگر باشه جامع نگر باشه و نه تنها فقط باید نسبت به فروع فقهی فتوا بده و نظر بده بلکه نسبت به ساختار هم نظر بده یعنی ساختار فقه هر هم فقی عهدهدار است که سامان بده صورت بندی کنه ما باید متوقف بوانیم بر یک ساختاری که هرچند بسیار استوار، بسیار حکیمانه، بسیار دقیق، بسیار سنجیده مفتنی بر مبانی مثل ساختار شرایع از محقق هلی رضوالله تعالی علیه که خوب صدها سال است که نوابق ما، بزرگان ما، فقاهای ما همه بر اون ساختار پایدارند اما آیا اون ساختار امروز با سکوه هست؟ آیا در اون ساختار ما توانیم امروز جامعه رو اصرار کنیم که فقه ما همچنان باید در غالب اون ساختار باقی بماند یا فقیه امروز باید بیا ساختار جدیدی نسبت به فقه ارائه کنه و طبعا اگر بنا شد فق رو کردش بشه سیاسی بشهت حکومتی ساختار کلان تغییر میکنه عوض میشه چیز دیگه میشه و دیگه غلبه با غیر معاملات نخواهد شد به قول مرحوم شهید بخش احکام این ساختار چهار بخشی محقق هلی رو مصح می فرمانی که دو ایرادشون می بعد یکی از ایراداشون این است به ایرادم وارد است که بخش احکام بخش چهارم عدود یاد کذا و بقیه ایشون گه این بخش برقی فرقه فرخه یعنی این غالباً این عب... بعضی از این عباب با هم دیگه سنخ نیستند یک انسجامی ندارند یعنی اون بخشی که مربوط عمدتاً بخش ای از بهم مسائل حکومت میشه یا یعنی همچین نقطه زعفی احیاناً در این ساختار داره ساختارهایی که دیگران بسلاً به این معاصرین ارائه شده این نگاه ساختاری به فقر غیر از نگاه فرو محور یعنی فقه فرو یک فقه درسته اما فقه کلان نگرد نگر طور دیگه است فقه متناسر که جز جز فرو رو میبینه بدون اینکه اینها رو در پیوند با هم ببینه خیلی راحت میشود رو رو تحلیل کرد و رأی به اواهی روا داد گوهای چوب کربید بزار مشکل حل میشه میدید روا حلال میشه وقتی ما متناسر و متجزع ببینیم فقه رو اما اگر نگاه کلام بود اگر نگاه نظاممن بود، نظاموار دید و فقرو رو نظامیه دید، نظامساز دید، اون موقع خیلی راحت نمیتونه این حرفو بزنه. چرا که این اینجور فتوایی با سایر جهات درگیر خواهد شد نه در داخل فق در درون فق که نگاه منسجم، نگاه نظاممن، نگاه کلان، نگاه کارآمد نگاه حتی اجرایی و عملی نگاه معطوف به مبانی بقایات به مقاصد اهداف دین اینا در درون فقه بلکه فراتر از. فقه. بلکه باید ببینیم اخلاق چه کار کردی دارد در استنباط میشه یا فتوایی داد که در اون فتوا مثلا اخلاق آسیب ببینه یکی از این رسول فاضلی که در جلسات رحس و سبهه شرکت بکنه چند روز یک دو بار مراجعه کرد که من می‌خوام رساله‌مو بنویسم چی بنویسم گفتم بذار فکر کنم گفت که خب من هم رشته تخصصی اخلاق دیدم هم رشته تخصصی پروتکل کومار رو دیدم دوستا در رو به موفق بود دیده کو اینا رو گذرنده امروس یودیروسو دیروسو که آخر درسمات پرسید خب خوب فکر کردید من چیکار کنم گفتم شما برون رسالت رو در موضوع کارکردهای های اخلاق و نقش و جایگاه اخلاق در استنبات کار کن چون هم اخلاق کار کردی هم به قولو احیانا یا حالا سیاسی هم سلینا دیدی ببینیم اخلاق چه جایگاهی در فقه دارم می شود که شریعت بلا اخلاق دیده بشود و حتی مگر شود شریعت و اخلاق بلا اخلاق مبانی یعنی کلام، بینش و دیده دیتشه اینا یه مجموعه و مگر می شود ما کلام رو، عقاعد رو و اخلاق رو و احکام به معنای یعنی شریعت رو بدون ملاحظه حیثیتات و ابعاد معنوی دین ببینیم می شود، اون می شود فقه آیا میشه فکر رو استنباط کرد بدون ملاحظه این حیصه از فقه این حیث از دین در واقع مگر نه این است که شریعت یه رکنی و بخشی از یک نظام کلان دین یک ابرنظام نظام است اجزاش با هم در انسجام هستند با هم دیگر در پیوندند. نمیشود یه جوز او دید جزء دیگر رو ندید مجموعه یک معجون شفا بخشه اگر به نحوه مجموعی و معجونوار دیده شود و مصرف شبد شبابش است؟ ویست دارویی که ده جوز داره شما بخواید مثلا الان حساب بگید فیلالا هشت جوزشو مصرف کنیم یا اثر نمیکنه، اقل نتیجش چیمیش که اثرش نخواهد بود چون اون حکیمی که این دارور از ده جوز ساخته ترکیب اینها رو شبابش قرم داد کرد شما بیدید فیلن هشت روز مصرف کنید بس اقل اقل اقل اقتبال کمترین اقتبال است که خاصیت باشه اثر نکن ولی اقتبال قویتر آن است که این مزهر باشه برای این ترکیب با هم دیگه درمان میکنه. شما اگر اصرار ببرزید بر یه وجه دین یعنی دین رو تکبودی ببینید در اون که خود خودمتال دین رو چند بودی لاحس فرموته دین رو فقط فق ندیده فقط کلام ندیده اینو چه که حاصل در واقع فهم و معرفت از ابعاد دین هست که در قالب دانش کلام در قالب دان... دانش فرق در قالب دانش اخلاق صورت می‌بنده و حتی و به اضافه معنویات معنویات غایت دینه چتر بر سر دینه روح دین معنویته خدا و پیامبر خدا آمدند اما امتحال پیانبر و اعظام فرموده کتاب اگر نازل فرموده برای اینه که انسان با عالم معنا متصل شه، با عالم باطن مرتبط بشه مگه می شود فکر رو یا اخلاق رو و حتی و روزو من با مشخصا کلام رو مطالعه کرد بدون که به عالم معنا و حیث معنوی دین و حالات معنوی انسان نیازهای معنوی انسان توجه نکرد قهران باید اون رو دید کمان که باز علم هم جز از دستگاه دین است. دین علم خاص خودشو داره علوم علم دینی قیر از علم سکولار و علم الهادیس علمی که حس آلم را هستی رو فیزیک رو همین طبیعت رو طبیعت می‌بینه نه خیلقت طبیعت میبینی بیروح نمیگوید این طبیعت روحی هم دارد خدایی دارد اون چه ما داریم میبینیم جلوات اوست جلوات اوست نمود اوست بود یه دیگری است. باطنی دارد این عالم. و اگر عالم رو طبیعت دید و نه خلقت در همین کلمه هم از آن و اعتراف نکرد که ی خالقی وجود داره اگر ما اینجور ندیدیم قهران دین رو درست ندیدیم و فقر رو درست نمیتوانیم فهم کنیم و احتمال این که دوچار لغزش بشیم و فتاوایی از ما صادرشه که احیانا با بخش‌های از دین حتی سازگار نباشه این احتمال ضعیف نیست احتمال خیلی قوی میتونه باشه نگاه کلان نگاه جامعه جامع نگری و کلاننگری نگری کل نگری کل انگاری دیدن معجون اینا چیزای جهاتی است که باید ببینید در نتیجه یه آدمی امروز میخواد فتوا بده کار فقهی بکنه باید در اخلاق هم مشتهد بشه در کلام هم باید مشتهد باشه نوه دانش رو از تمام بزمال و تعالی در رسائل در وقت اجتحاد ذکر فرمودن که اینا مقدمات اجتهاده ولی الان قهران و علم حد تا که نمی کنه. امروز اگر کسی علوم انسانی آشنا عشن... نباشه در موضوع شناسی پشت میلنگه اگر آشنایی با اقتصاد نداشته باشه نفهم اقتصاد چیست پیچی اقتصاد رو ندونه مقوله بانک رو نفهمه حقیقت پول فعلی رو خیال کنم پول حقیقیه که ارزش ذاتی داشت تکه سکه به سکه طلا و نقره بود مثلا ها فکر کنی که اونو مثلا پرچش غلط از در میاد این مشکلی است که ما داریم ما یه چیزی حدود 25 سال بیش تقریبا چیزی که تو ذهنم هست یواخ من یه سر سر بحث هایی بود با این دوستانی که این قانون بانکداری بدون بهره و اول انقلاب تدمیم کرده بودن و بعضی از آهازم هم تو جمعیشون بودن محمد تلو رزوانی هم فقیرشون بود به ایشون هم خدمت چون می در پژوهشگاه تش می بردن و احسایی کردیم مسئله بانک و پول و بانکداری به یه سر سال رسیدیم خب این اون قانون یه قانون وصل پینهی لاجرمی موقت اول انقلاب بود شاری نداشتن با و ماتو و عملیه و اینا و احکام حکومتی بالاخره کاری بکنه ربا پل جمله هست از نظام بانکی این حد بیشتر از اون بر نمی و نمی شد اون زمان هنوزم نشود هنوزم دعوا زدیم هنوزم الان صدها ماده مشخصی تنظیم شده قانون بانکداری رفته مجلس یه ادعای این سویی ادعای اون سویی فکر می‌کنن نزا هنوز حل نشده و رؤفای مالان مشغول هستن اصلاح میکنه رفته شون نگهبان ایراد گرفتن و هنوز ما نظام بانکی اسلامی رو نتونستیم در رای کنیم. قوانینش رو کامل تنظیم نکردیم هنوز تو گیردار چندین سال الانی وزید. تو گیرودار مجلس و شروع گهبان و مجموع تشکیس و این قضایی هست. اینکه بعد اون زمان من اومدم یه سلسل سوال رو به عنوان استفداع از جمعی از فقاهای اون زمان که بعضی... همون زمان مرجع بودن، بعضی بعدن مرجع تقلید شدن. از محضرشون استفتاق کردم. تا آقای برحال سوالات احبامات هست. بعضی خوب جواب دادی بودن. ولی خب بعضی ها نشون میداد که اصلا مسئله رو خوب تلقی نفرمیدن تا بتونن سوال و مناسب بدم یعنی فقیه بود، فقیه احیانا هست. اما اون زمان دیدیم که مسئله بانک، مسئله پول موضوع شناسی حل نشده. چند پیش محظر یکی از از آزازم اوشغغف بودیم به مناسبتی بحث مالکت فکری شد مالکت معنوی شد من کدام در محسسه محسسان امام بزاری سلام این اشتا رو داری کردیم از جمله فکر مالکت معنوی مالیکت فکری شما خیلی جالبه خیلی اشتا از آزازم هست بعد فرگودن که اخ... من این کتابی خوندم در ملکوت فکری خیلی کتاب خوبی بود اون فردی که در محضر ایشون هستم کار ما هم در پژوهشگاه هست از کردم فلانی مطلب ایشون حاج امام فرمان آیا کتاب فلان همکار کار ما نیست کوچ چرا خود اجازه کتاب دیگه همشون در مالکت ملکوت معنوی و ملکوت فکری داره اونا رو خدمت نویسنده می کردم این بزرگوار که فقیه توانا و برجسته و بسیار تاثیرگذاری است فرمودن که ما در فهم موضوع مالکت فکری مشکل داریم ما اگر موضوع رو بشناسیم راحت محل میکنیم مسئله رو ولی چون گاه موضوع رو نمیشناسیم خب میدونید بعضی از عازم ما از از بزرگان ما اصفاقه در همین روزگار چون همه طلبیم من این را دارم اعز میکنم بعضی عازم در مسئله مالکت فکری که میگن مالکت فکری این مالکیت اگه میشه که یه امر فکری معنوی مثلا مورد تملک قرار بگیره میشه مگه و نظر نمیدن پتر نمیدن نسبت به حق مالکیت و حقوق مالکیت و حق مالکانه و تصرفات مالکانه و که هر کسی خواست هر کتاب هر کسی برادر بر چاپ کنه مثلا هیچ نداره که چرا چون موضوع حل نشده دیگه موضوع این چی حل میکنه علوم انسانی حل میکنه یعنی ما نه تنها به اون علوم نیاز داریم به یه سلله علوم دیگری حتی به اضافه اون نه علم می کهسته الله و سلام علیک فرمودن به اضافه اون ما به چیدایی مثل علوم انسانیت یه تیری داریم طلب ما باید اونسانی ب خوونن نمیگم در همهیر اشتام می شود هم خون بر متخصص شد اما بیگانه نبد باشیم بعضی از ما بیگانه ای یک هضراتمراجع خوب این چون حصل بزرگیوار است بزرگ اسم ببرم از سایتوللار نوری که امروز مستفید صدیم از پیامیشون خیلی سال پیش و من که من می‌خوام در بحث پیخ هم و فرق اقتصاد از موضات اقتصادی شروع کنم اولی کتاب های اقتصادی پجوشگاه رو یه مجموعه بدید بفیزید بیاد من بخونم بعضی اساتید رو از جمله مرحوم آمان موسعویان رو رزمان و توله علیه که با هم بود از دست رفتیشون خیلی متاسفیم و متاسفیم جون جلسات و متعددی مشرف شد خدمت آیت الله نوری حافظ الله و نشان و جون فرمودم شروع کنم این کتاب اقتصادی رو بخون کن که نواصای علوم انسانی بود فقه نبود که حالا بعضیش رنگ و رو به هم داره ایشو حقی هم ایولا داره اما عمدتاً در علم اقتصاد این کتابه شو فرمودم اینا رو بخونم بعد بحثو شروع کنم این درست دیگه خیلی خوبه که واسه وام اقتصاد شروع کنم به هر حال این موضوع رو تشخیص داده باشم مسائلشو بعد دیده باشم آراء اهل این دانش رو باید برش مسلط باشم، بعد بیام و حکمش رو کنم بدون لحاظه ها نمی شمد حکم رو ایان کرد. در هر حال من قغض چیز دیگه بود مخصم بس دیه از کانوالی دی همینطوری نکاتی رو از کردم فقط اشاره کنم تسلیه نکنی وقت دو سدقه تمام کنی من بین دو تا مسئله مردد بودم حتی تو صبح امروز بارم پاهم می رفتم کدوم این رو اتفرح کنم اگر براش رو صحبت کنم دومیش دو بحث از طبقه بندی و دستبندی احکام و برایند این طبقه بندی در تولید فرق و فقه معاصر و حل مسائل اصلی امت و نظام اسلامی بود وی این مختصر بحثی داشتیم البته بهانه تقسیم واجب تو اصول این دوره همین دوره که الان مشغولیم که بقیه شدن از که نبی ما پسر آقا دنبال کنه چون پونده هست سال فلندستیم به حالا بعد از ما میل دو نسیدی هم باید ادامه بدن تا برسن به تعدل تحصیب اونجا یه دو سالی بحث کردیم به بهانه اون تقسیم واجب وارد بحث تقسیم احکام شدیم محسن احکام طبق وندیش چیه حالا اون بحثایی که داریم تو اصولمون، به, چ... به چهار طبقه و در مجبوب 24 تقسیم به صلاح رسیدیم که خب غالبش در خلال اح... فقه ما اصول ما هست بعضی هم جدید مشناده است. بعد در یه جلیسی دیگه ای که بزی از اساطیب تشک با خدمت شما مشرف میشیم با هم بحث می اونجا مدتی هم بحث کردیم که آقای دکتر حتما اصلا گلی میکنه که به مناسبتی وارد بحث دیگه این وسط شدی موقتاً به سوتاس جمله محترزه برهاییم کرد خب مدتی هم اونجا اون طبقه بندی از کردیم بعد در این جلسه بحث شد که خب این طبقه بندی و هر از این تقسیمات و اقسام چه برای تو استنباط داره مثلا در مسئله تقسیم و حکم تکلیفی به وزیعی که وسیع ترین تقسیم هم قلم داد میشه خب اینجا ما چه برایندی داره این تقسیم خصوصا در حکم وزیعی و احکام وزیعیت چه برایندی دارد استهدار دارم اساتید که حال احکام وزیعی رو یه مداری جدی ما نگرفتیم مدتی در اصول ما جدی گرفته نشده بود پیشینش تو اصول اهل سنت عامه بوده رضوان الله علیه واقعاً بعد از بعضی ها قددان بود که گاهی مبدع میشن، مؤسس میشن. مرحوم فاضل‌تونی، ثاوی بافیه در استصحاب بهمون یه تنبیه اینکه که آقا آیا مش حکم شرعی بود استنباط است، استصحاب شدن؟ بعد این حکم وضعی رو مطرح میکنه حکم وضعی آیا شرعی میشه که وضعی رو استصحاب کرد یا نمیشه کرد؟ این انوان وارد این بحثه حکم ازی میشدن تقریبا ایشون مبحث حکم وزی رو وارد اصول ما میکنن خب این بحثو طرح میکنن بقیه هم بعد ازشون هی وارد شدن رد و قبول کردن مبدای چالش فراموش شده که چرا این بحث اصلا مطرح شد ولی خوب شده که اصل تقسیم حکم به و وزی جدی شده در اصول ما. خب معمولا دو سه قسم میکنن چهار قسم،, قسم پنج قسم پیش قسم یه مدتی تفصیل دادیم تقریبا در قسم و هر قسم رو گفتیم چه براینددی داره. در چه زمینه های در موضوع شناسی در ساختار بندی حتی در دوولید نظام در مسائل مختلفی حکم وضعی که کمتر توجه می ما معملا ذهن اون تکلیفی است. اما حکم بسیار بدون اصلا توجه به کارکرد حکم وضعی ما نمیتونیم مثلا نظام سازی کنیم. بسیار از مشکلات حکومتی رو نمی‌تون حل کنیم. کارکردهای بسیاری داره. اینکه ما بیایم یکی که این احکام، به این تقسیمات رو، انواع و احکام به این اقسام احکام رو و این طبقه بندی‌ها و تقسیمات رو به با و یه فرایمیه البته. حالا از مقام انشاء بگیریم تو مقام انتصال در این طبقه بندی که در هر طبقه دست‌در دست تقسیمات قرار می‌گیره. و در هر تقسیمی چند قسم تولید میشه. هر قسمی یه سرله برایند داره در مقام استنبا اینها رو کار کنیم اگر بخوایم کار اساسی انجام بدیم به نظر میاد که بیشتر خواستم اشاره کنم که حال میخواستن یه بحثی رو بحثیلهطرح کنم حالله تا تالت تحت و بحث ناقص و ناررس که یه زمان گذشت رو میزانیم برای نوبت دیگه اینشاالله. من یه پیشنهاد خدمت اساتید فضلا هرث موسسه مدیران هر مسه و نظر هسته فلاسیفی میخوام از بکنم این جلسه رو یه جلسه آغازی قلمداد قلم داد کنیم یه اتفاق است افتاد مبارک و شد این از برکات محرجب بود و این که بازم تعارف نمیکنم واقعاً واقعا باید شک گذار بود چون این جرقه ها تدبیری نیست تقدیریه این یه مرتبه به ذهن مدیر مثلا المعهد رسیده فرمودن آقا ی همکاری بکنیم آیه نایمیان آقا مشکانی مثلا بیادیم همچکار مشترکی بکنیم یا آقا ی مشکانی بزنه اشغال ی نیار بزنه کدومشونو بزنه شو اصلا نمیدونم ولی مسلم من اینجور معتقدم حالا اگر عوامان هم هست اشکال نداره آقا خوب عوامان بشه من معترقدم اینجور جرقه‌ها و قبسات یه یه جرقه می‌خوره یه اتفاقی میفته بعد یونید ادامه پیدا میکنه, امتداد پیدا میکنه توسعه پیدا می‌کنه، اتفاق تبدیل میشه به بزرگ. من میخوام این جلسه رو و این نکته رو که فرمودند و حول این مسئله بحثای خوبی و اطلاعاتی کردن هنوز ناقصی ما داشتیم، ادامه رو دوستان کارواد بکنن ان شاءالله. اینو یه و مطلعی قلمداد کنیم برای یه سلسل کارهایی. در چه شاید لازم بشه با همه اشتغالاتی که هم سای سیفی همکارانشون هم حقیر و همکاران هم داریم گرفتاریم یه جلسات شاد بگذاریم قبل از اینکه که مسئله رو بیایمش به صلاح تو بازار شاهد بازاری بشه تا پرده نیشینه با هم مشارتهای بکنیم یه چارچوبی بی کنیم بگیم ما یک نگاه کلان یک حرکت کلان یک ترح کلان به تعبیر پرنگیش را میگن پروژه پروژه بشه این قضیه بیایم یه نگاه کلان بکنی بگیم ما ممکنه یه سال دو سال پنج سالم طول بکشه زیاد نداره به حال ادامه خواهیم داد ان ما همین مثلا یه جلسه بذاریم یه چارچوب طرحی کنیم یه سیر معینی داشته باشه این چارچوبه بعد قطعه و قطعه به قول فرانسیش پازل و به قول فرانسیسانه ادب جورچین این قطعات این جورچین رو هی در هر جلسه یک کشو مطرح کنیم که جمعش یک دستگاه رو انشالله سامان بده در جهت تحول اصول تحول فقه یا در یه جهاتی هم اسمشو میداریم تحول نیفتیم تو دام تبدل بگیم که ارتقای اصول بگیم احیاء اصول بگیم توسعه اصول هرچه خوشاینده حبیر میکنیم بکنیم چون من همیشه از این کلمه ها که طرفتار هم بی شدت ولیگا نگران می‌شم. همیشه نگارند که تحول یه مرتبه میگیم تبدل میشه عملا یه چیز دیگه از آب در میاد مثل بعضی اتفاقاتی که در حوزه میوفت که تصاحنه داره آسیب به حوزه میزنه رغم که مطالبهات طرفدار تحول نوگرایی و نوآوری هستیم و نو اندیشی ولی گاهی حاصل کار چیزی دیگه عذاب در میاد درغی بند از هر پیش میاد مخاطب گیرم میاد این نکتر رو میگم که خطری که حوزه رو تهدید میکنه از اون خطر بزرگتر نداریم دانشگاهی شدن طلاب و دانشگاه شدن حوزه است. این نباد اتفاق میفته این, این اون تبدل است تحولی نیست این اون ذات نگرانی ونده هست انشالله ما با نام تحول همون تحول تحول یعنی در مطلوم سلسله باد اتفاق میفته بدل نشد به چیز دیگه تغییر نکنه، همون تحول همون ارتقا هم توسعهس به همین توسعه اراده نداره بگیم تعمیر هم بگیم برای اون بزرگانی که اصول ما رو فقه ما رو کلام ما رو تفسیر ما رو تعمیر بخشیدن یه روزی ما طلبی بودن ما ام طلبی این یه بگیم آرام آرام یواشوش اینا به صلا سیقل بخوره و سوال تعمیر هم ایانم تحکیم هم بشه این پیشنهاد آخر و نهایی حریر است انشاءالله اگر صلاح دیدن اجازه یی سیفی با هم میتونیم همکارانمون بشینن بحثایی بکنن که هم اتفاق بیفته من مشرف بشم قم ان منزل آمدیم رحمت دادیم و شما کمال لطفی فرمودین بگفتیم نهار امروز خدمتتون باشیم فرمودید قرار داریم به تشویشی بوید شما متلکات بمونیم ان شما تشریف میارید تهران ما خدمتتون رسیدن مشرف میشیم قوم. یا چارچوبی رو طراحی کنیم بعد یه اینو متناوباً قم و تهران اجاره کنیم. و حتی این نکته رو به دوستانم رسوخته گفتم پیشنهاد میخوام بکنم گفت طرز به قم و تهران می‌گفت فنا کن. گوی مثلا قم، گوی تهران، گوی بیم مشهد، گوی بریم هوزستان، گوی بریم تبریز. یعنی اراده نداره با دوستانمون در حوزه های مختلفی کشور که خوب خوش با همه رفیقیم. پیغام بدیم آ ما اندافه می‌خوایم شما میزبان ما پاموشیم مییم. حالا یه روز میریم یا فوقش دوروز روز میریم کردیم توی فضای مدارس مختلف مختلف مختلفی بحثا و مطرش و آرام آرام یه نمیگم جریان شک بگیره یه بالا بالای ولی تا یه حدودی بتونه کمک کنه به در واقع این تغییرات و تحبولات خیلی پریشان و به قول اهل عدب پاشان و متفرق و متناسر ارز کردیم از هر دری سوحنی گفتیم خسته کننده بود انسجام نداشت عراعی زمان ولی همه بر دل بود دیگه گفتیم شلو حلامتال اعنایت کنه و توجه کنه اعنایت هست هم و علی رو داشته باشیم توجهت هست هم و عجت رو, رو داشته باشیم که کمک کنن و کارهای در این زمین ها انجام بشه آهای آه غرهتگاه هفته قشنگ تمسیلی میگن خیلی کوتاه میگن آها نغم که یاد کنیم از برزی آزان بعد نیستشون. محرم بودیم مدینه محرم الله حسید بهتی روحانی محرم می گفت که داشتم میرفت از حرم می آدم می داشت می رفت حرم از رسولی رسیدم رو الله روحانی رسال الله مده موزوگ گفتم که آقای دعا کنید آقای قررتو می گفت که بیشون گفتم برای من دعا کن که من قرآن را از محجولیت خارج کنم برمای روحانی خوب خیلی باصفا بود با همون لحجه قومش گفت اوه چه ادعایی اشون که در جواب بفتم آقا اشرف مخلوقات عقل کل صادر اول این یہ ای اصطلاف فلسفیر آقایی خیلی درگیر نیست مطلبه آزی حرفان میزنی اشرف مخلوقات کیه رسول خدا نیست مگی بله گفتن ایشونو خدامتال با تار بود نگه داشت و قار نمیشه من کمتر از تار انکبوتم بگو ایشون سرشنده ها پاییم داری فکر کرد و افکر کرد برای حال ما تار بود این کارم خیلی مهم ولی خدامتالگاهی کارش اینجور را را میندزدی حالا با دست من طلبه یک کپ آوزه آلا برو جلو درست میشه ولی ازا انشالله عزم کنیم امید خدا و خدا تلاش کنیم که ما یک کام های اولیه رو برداریم دیگران ادام بدن شد اتفاق بیفته خیلی طولانی شد اللهم صلی علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد